من بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الله علی و و رسول الله و آل طیبین الطاهرین ما صنمین و ناجز علماء و جميع المشاهدین وارحمنا واهدنا يا در مسائل معرکه ارز کردیم کار کلمات مروم شیخ ازم عبدالله سره واقعا مروم و زنبایت نمیدارا چون در حوضه ها معروف شده و انصافا هم در مقاصرش نخصیصم خیلی نکات لفیهی رو ایش رو متعرض شدن و در کتاب مقاصر ارز شد که ما افتداعاً متحدد کلمات مرمون شیف بعد از کلماتی که بعد از ایشان بخته شده خب موزن این کلمات یه مردادش در کلمات مرمون سیگر یزدی کمتر تا رو متحدد شده هاچیه نسانه خوبی دارد موجز مخصوص محرومش کاملی هاچیه موجز و بسیار مفیدی مرمون ایروانی دارن استاد مرمون آلکوی مرد روشن فکر نیست روشنی روشنیست نه روشن فکر و خیلی لرافت ها و لطاقت های فراغانی خیلی فراغانی شاده گفت مثلا ترگیران در هر سطر شیشان نکات لکی مرموم میزه چیزازی حتی صلاح که مرموم میزه چیزازی دوم یا باید وقت میزه چیزازی تغییر رو بیشان گفتیم شما ما شما تغییر شیرازیه از میزای کمید مرموم آسان مثلا شیرازی به که قلیه تنباکنی موجود است به میزای بزرگ و قصه انقلاب سال 20 ایران سال بیست و از اینجانی شد یا به اصطلاق خود ایرام یا فورت به زمان میزای دوم مرموم آشانتریه شیرازی رضوان الله تعالی این نمو خاشیه چاپ شده بر متاسه، تا کمتر متعرفش شده بسیار مسئله لطیف و کشورهی دارد اخیلی هم کتابی هم پاشه مرمون ماضی ها برد به نظرم مجموعه آثار که که هم کتاب رو خوبیست کتاب برد که کتاب استاد نسب آقای قراهه ها نفسه. کتاب دیگری هم یه همزمان ایشان نوشه کده که آنونتون مراجعه کنن انصافا تو خیلی از موادس مقاصد ما هر این بلم هایی متخصیر ما بسیار دقیق و خوبی انجام دادن یعنی شاید مثلا در به مناسبتی در کتاب امر و نهی از مونی شد که در کتاب های کرده کردن هست در بیتر تفتایید که کردن با دیش از تو همین بست آنه برای اس مقاسب که از اون نقومی بیدیم بست تو هستیم و تو بست امر من رو کرد تو بست آنه برای اس خیلی زراقتها و زفتهای فراغانی رو بکار بردن که در میان کلمات احسانه نیست او بعد در مرحوم شیخ تا یک کنگی مرگوم صاحب جواهد با که زیرون بیشتر بعد از مرگوم شیفه تحلیل های فکری و عصوبی خیلی قدیتر شده تحلیل های و عصوبی و خصوص یه تحمولی کنن در فکر و عصوب شیعه پیدا شده در بیشتر در فکر همونز پندر پیدا نشده و اون کاجی که از زمان صاحب جواد و تا حالا شده اگر همراه میشه با قسمت های در رجالی و فیرستی و همیسیناسی خیلی سمرات بیشتری رو در فیق خواهد گذاشد حالا یک محبوم شیخ انصاری روزان داختار و داره بحث مقاصر محرمانه رو همشون که حس از مقدمه که اوندن به پنج نوع اساسی تقسیم کردن از شد این تقسیم بندیشه اولین کسی که در فرحشی انجام داده در حساب این دو بنده از وقته آه این مراضیه فرمونه به شرایه برمیشه درداز از و حقه این در تلمات شیف توسی یا دیگران نیمونه اولین کسی که این تقسیم بندی مقاسه محرمه رو به پنجنو انجام داده مرموم ساش شرایه و این پنجنوش هم اول به احیان نبیسه رو آتنه که هم همون مطالبها تفصیل دادن و این صاحبا اگر مقایسته کنیم مثلا دکتنی کتابی که در اونیشی باید اجمالا روزه به تفصیلن تاپ شده چون تا کتابه شاقه از اشار تفصیل بیشتر داد به شرایع نوشته شده و فعلا موجوده جواهر باشه بین کلمات شیخ با جواهر خیلی ترخزیاده تا این پنج قص مکازه مهم اول احیان ندیسه دوبون و سوم اونی که قصد محرم ازش بشه که آنه بر اسم باشه یا اون قایتش محرم باشه دوبون چهارم محرمات احض شید و بروش محرمات یا احض عجلت بر محرمات هرام پنجم واجبات این پنج دستبندی بندی ساب شرایط فرمیده از بسال الله این معنی کار مقاسبه فرق کاری که مرمون شد کردن در قسم محرمات بیش از شرایط متعرض شدن شرایط این آدم محرمات این یک و دو به تفصیل نیشتری بارستن و حروف هجایی را مراعات کردن طبقه گروه تحجی از عدف شروع کردن از تا تدریس اینا شروع کردن رفتن جلو که الان ما در حرف راه هستیم رشوه یا رشوه در حرف را به حسر تحقیل مرمون این نقطه رو شیخ داره که مرحوم صاحب جواهر نداره یه قطعه امریک به دو حروف هجایی این ترتیب که از آن به رشوه رسیدیم مواحظ رشته رو هم در رشوه ما امروز همراه شیخ رفتیم در مواحظ و اون ایسی دو تا بخص اصلی بوده که همون در جام کردیم آخر بخص اینشالان لیکن با عنوان اصل موضوعی صحبت شد توش. و ارض کردیم این از خود و رشوه که در روایات سن... احل سنت آمده لعن الله راشی و مرتشی و از این تومجهی که من می‌دونم در سه ها احل سنت هم لعن الله راشی و مرتشی هم تو روایات ما نیاماده بکنه خب خیلی معروفه در سن اصحاب ما خب غلق معروفه لکنه لفظه رشوه آمده اما راشی و مرتشی این تربیر این صحبت رو که در قیلی از اونگاه روش و راشید از کردم در طول زمان از همون زمان صحابه مطالب دیگه هم مطرح شده خب در قدر فرماید یک نقطهی رو تونن همیشه کردن ما در مواحظ خودمون عادتا روی خجت بحث میکنیم اصلا میگه آیا این مطلقه امیر المؤمن راجب اجرت بر فردا صحبت ربایدی نه هم شد او خود هست نه این یک گیدگاهه اصولاً مثلا ممکن است رو واقع باشه یک گیدگاه اصولاً این دیدگاه الان در یه ما بیشتر نابوده ما با عنوان اصل موضوعی قبول کنیم خود بهش چه لغشه معنی رو توضیح بدن حالا فرض کنیم این روایت درسته ولی بعد در مقام عجیت خواهی گفت نادرست من از خلع کراره و میراره و تکراره یکی از نقاط اختلاف اساسی ما با مستشری حتی غیر مستشری این باید مستشری باشه تحلیلگران غربی کارایی که اونو می کنن. این زایه دسته اصلا پس ما فهرست نجاشی داریم غربیه هم ها تحلی... کتاب های بسیار مفصلی راجیب فهرست کتب راجیب کتاب ها فهرست های بسیار زیبا اصلا کتاب رو به نصح های متعددش نصح های چاپیش نصح های آدرس ها خود کتاب رو تحلیل کردن که کتاب مثلا پنج مطلب داره چه مقدارش جدیده چه مقدار جدید نیست از کجا گرفته خیلی کارهای زیادی کردن انصافا خیلی زحمت شد نمیشه امکان کردن لیکن باز با تمام این حالا اون کاری نیست که انجام چه انجام نه اینکه اونها مثلا در های بحثیشون کتاین اشتباسون من این وقتی هم صحبت کر آهای اشکار کردو خواستن اینا خیلی در واقع چرا کلا این نیست نه بابا مطلبه تو کی چه کار کردن من بحثم اینه زاویه دیدی فکر میکنه خوب دقت کنی؟ دید نجاشی به فهد دید حجیته قریه ها اصلا از دید حجیت نگاه نمیکنه کاری به حجیت نداره ها کاری ندارن این کتاب مال زراره یا محمد بن نوصر حجت هست کاری این کارا ندارن دنبال حجیت نیستن به خاطر فرمودیم ما دیدمون دیده حجت لازم در خطه این نه اینکه من میگم مثلا در دنیا قبل این قبوله من این منم فروم دارم چون اونا دیده حجیت ندارن میگن در فلان نوشتار این درمی اون نسبت داده شده به عمر نسبت داده شده فلان نسبت داده شده این درست علماءی اسلام نگی خواهد این ما ابن ابن حض نگاه بکنید قبل از ابن حض از همون اول وقتی این اومدرموتن به عمر نسبت داده شد به علی بن ابی و علی ابن عباس همین ها هم بررسی می کنند لذا در سلماسی مثل, مثل ابن حض داره بکرد صحه عنی ابن عباس انگه قد صحه منروب یعنی ابن عباس ولن یه صحه به خطی بود نه اینکه این علم ها منتخط نبوده ذکر کردی؟ گوشن شد اینا نمی آمدن کلامی را از ابن عباس مونجا به نقل بگن قربی ها به این جهت کار ندارن صحه اولویسه اونا کاری به صحه ندارن اینا مطلب به این, این مطلب روشن شد اونا به این کار دارن این مطلب ابن عباس نقل سر بشن اینا میگرد این نقل شده پس دو دیده متفاوته. و که من اسم ابن حرزی در قرن پنجام بردم از علمان هم چون زیاد بردم چون علمان ما هم هست همین عبادت معروف اجماع اجماع, اجماع مورد همین اجمعته اصابت و الان تسیح مایته و انها قولا تسیح مایته یعنی اول شما بگوییم مطلب بان یونس هست اگر باشه یونوس صحیح بزرگوارش دلو فرزد این تسیح مایته منو زیده چون ممکن است شما یک مخلقی رو از یونس نقل بکنید اما مال یونس نباشه نمیگرده هم رویه هم, رو هم. این خود دقیقی من حواسم جمعه این خیال من گوی اوقات یونس خواهد من گایی دیگه این حمله با. ما یک شعن و داریم در شعن و حوضبی روی سحه و لمیسته از حواهد میکنید روی شعن و حوضبی روی حجی رو هم خود دقیقی اجر قاضی سحر نمیار مؤمنین نه هست رباید حتی که نمیست سنوی سهیم در دربیه ها اینجور نگاه نمی کنن خب نه دو دیدگاه نه اونا میشه اعتراض کن نه به این وقت دو دیدگاه اون دیدگاه برای اجمال بحث خوبه همولا حجیت درد نمی کن یعنی مثلا به اینجور که از زبان رسول الله اون موضوعی که آمده رشوه بوده یا رشوه بوده یا رشوه بوده بعضی‌ها میان به این حرفا، رشوه نه، سه، رشوه مون پولی که داده میشه یا بعد حالا رشوه بوده من عرض کردم اصلا فقر همین بحث اول همه اون نشسته داشتن از نیمه قرن اول از بعد از اسلام صفر تا ده طوسه است طوسه صفر چیه؟ دقت بکنید. بخوام برگردم به عهد صحابه شما رو، همین داره چهار سد و سی تا داری شروع سریع در یاد صحابه در یادی توسعی این بود اصلش این بود ما یک موضوعات معیم داریم که در قرآن و یا در سنت پیمنبر آمانید اما وقتی آمانند تو جامعه مثلا بعد از فتوها در زمان دومی که فتوها زیاد شد هزاران موضوع جدید پیدا کردن سوال این بود برای این موضوع جدید چه کار بکنیم این کارهایی که شما تو فکر می‌بینید برای این بود برای اون موضوع خرید آنلاین پیدا بود. مثلا موضوعی که پیغمبرهامون روش شد. موضوعی که در قرآن بود لا تاکلوا هموالکم دینکم و, دین و شد تو قرآن روش خب روش یک مفهوم لغوی یک داره. و쨌ه اما نگفتم خب حالا ما رشوه به این جور ببینیم پول بدیم به قاضی در اینکه به خاطر ما حکم بکنه حالا اصلا پول بدیم به قاضی که حکم بکنه مرد ملهایی که اما این پول میگه حکم میکنه آیه این رشوه هست یا نه اصطلاحا نه اونها گفتن اسم این اجره یا اجرت یا جوره پول میدین آ بده میشین به ما بدادون این عکس خوب دفعه پس چی شد موضوع جدیدی آمد اون موضوع جدید اگرال قضا نرقش و اگرال قضا <تصفيق> این خرید و فروش انگور حرامه من انگور در خرید و فروش خمر حرامه شراب ببینید در همین خرید و فروش خمر چیکار کردم، کردنست که شد آمدن گفتن ما بیم بعضی از این قیود مسئله را عوض بکنیم آیا درست میشی مثلا خریده فروش خمر برای مسلمان حرام برای اهل زمه جایه است من خمر خودم رو بدم به یک مسیحی برای من برکوش فروش من بره مثلا ابو حالیفی مو این اشکال نداره برد خب، ایک کار درسون روشن بشه. این چجور در تقیه تاریخ اسلامی خیلی داره هی توسعه فیدان میکنه آمده داره گفتن اون اشکال نداره اون آمد گفت نفرده نکنه میخواد گذوری برسون برسون مادان خمرمال شماست این فرقی نمی کنه این سو دکبسته برسید این بست به تفریعات و تشکیقات مثلا اگر شما یک آقای خم برسوشید پول نقض نگید بگید در زمین تو یک سال دیگه بعد و از اونه نداره، اشکال نمید نقضی و هلومد این یه ده تشکیقات و تفریعاتی بود که در دقیقه ایسلامی بود یه ازشم موضوع عوض شد من دارم انگور میتوشم خرب که نیست اما به کارکنه شراب انگور فروشی به کسی که شراب درست میتواریم این اسمشی چی گذاشتم؟ رفتن فوقهای یه از عنوان فروش خرب که نیست تو خرب میتواریم رفتن فوقهای اهل سنت عنوان درست کردن اعانه علال اس عنوان اعانه بر اسم میبجوه لذا آمدن یک عنوان شدید درست کردن همچنان که فروش خمر جایز نیست اعانه بر خمر هم جایز نیست چون اعانه بر اسم این موضوع جدید داشت یا کردن الهاق حکمی بکنن به این معنا همون معناتی که در خرید خروش خمر هست در خرید فروش انگور به کارکانه خمر هست یک قدم آزم گفتن نه. همون که نه ما اصول ترخیصی جاری کردن گفتم عنوانی که ما داریم خیل فروش خمر خیل فروش انگوش اصالتال اباقی یا اساس برای جاری کردن این مجموعه کوشک هایی بوده که از زمان صحابت و حلال اومناخازا خیل مسائل فیخی پیدا شده یکیش هم عجر القاضی بوده من ارز کردم در عجر القاضی هم اهل سنت از عمر میبارد دارن هم ما برمی رو ممید نسبت داریم ثابت هم نیست این ثابت نه به امام صادق هم یک اون به اجمال لفظی داره مشکل لفظیست که توضیحات گذشت که اون هم اشکال لفظی داره و من ها خوضا هستانها بر این خوب دقت بکنیم اون چی که در لسان درید آمده و روایت اون روشن بشه اون که می خواهید الهاق بکنید و ملحظ بکنید و او او این موضوع استگرمدستان دلیل نمیده اون هم باید روشن بشین از قدم اناوی نیشه بر ملحظ شده یکیش عجل قاضیه این توضیحش بوده هست یکیش مسئله هدیه. من نرشونه می هدیه به قاضی میدم. در مسئله هدیه به قاضی یه روایتیست که هدایی قضات جمع صحب اینجا دیگه بحث الهاق موضوعی نیست اینجا بحث سرنگی آیا این رواست ثابت هست نیست خجت هست نیست آنه در موتون شیعه آمده نیامده. چون ارز کردم در موتون و اهل سنت هدایل و امره سختون آمده غلون آمده هدایل و آمده هدای حدید یکل قاضی آمده انابین مختلف و تمام این عناوین هیچ کدوم جربازی نیامده هم من توضیحا به سابره کردیم خوبم بهتره بفرمایید که ما اون چیزی که ما داریم با اون چی که در دنیای اسلام گفته میشه روشن بشه اکثر اهل س... یک بحثه که از همون قرن سوم قارون پیدا شد که اصطلاحی به اسم فخ خلاب که من الان اینطور توضیح بدم فخ خلاب داره چند معناس یک معنا نیست که به ذهن شما میارد. که الان در زمان ما اهلسان در دنیا عرب فقه المقارن بشینگن یا ما در دنیا فارسی خطه تطریقی بشیم البته از که هم کلمه سیش فقه المقارنه زیره مخبول باید باشه میکن الان در دنیا عرب تلفظ غلط میپنم فقه المقارن بگن در پدین فقه الخلاق بشیم گفتن در خود کتاب کشف و زنون آقای مراجعه کنن کلمه خلاق دو معنا برسه به خلافه ورده از کردم من معانی دیگر هم من هم ها بحث بشن یکی از مباحث هم در دنیای ما از قبل وارد شد و اون بحث این بود که الان من واژه بحث در اینجا خیلی اجمال میشن مثلا شما اگر میگید اهل سنت هدایل عمار یا هدایل عمر دارد شما میگین ما ندارید پس چی یابی از روایت اون مال خلافه. ما تو بحث کردن اصلا خیلی واژه فقه خلافت نشه اذا اگر ما بودی در فرض اون روایت اونا رو قبول بکنید اعتقاد ما اینه که اون روایت موردیه معنی نیست مطلقا حرام باشه این خلاصه اینه که شما باید بفرمایید یه جور چون باید روایت اونا رو بیاریم مناقشه اونها رو بیاریم این طول می‌کشه به ذهن ما به همین دو کلمه برای اختصار بفرمایید واردش خود خلاف حالا اجازه خود اون فرض رو شروع کنید تا بعد وارد شود خلافش پس بنابراین ما در باب هدیه قضاث بنامون در اینه که جایزه در باب اجر القاضی که جایزه اجر القاضی اجر پیش ما دو بحث داره یک بحث از استظهار ادله داره که اینجا الان متعرض شدیم انصافاً روایت واضحی پیدا نکردیم یه بحث کلی داره اون بحث کلیش اخذ اجرت بر واجبات این اینجا جاش نیست ما الان نوع چهارم هستیم اخذ عزت بر محرمات اینشالله نوع پنجرم میاد اخذ عزت بر واجبات این بحث عجر و قاضی اونجا میاد با چند شد؟ خیلی در مباحث علمی این تفکیش رو دارمان داشته باشید هر بحثی جای مناسبش کجاست و چجور باید بحث میشه. پس فعلا ما به لحاظ روایات خاصه به زل کلمه رشو متعرض بحث عجر قاضی شدیم اما مقتضای قاعده عامه تو اصل اجل در واجبات اونجا ان اون قاعده عامه اینجا نکته خاصی نقطه نکته نقطه خاصش استثاء از روایات و اما هدیه اصل شد که اگر هدیه به خاطر این باشه و این اهداف باشه یا با قاضی قرارداد بسته که به نفع اون حکم کنه بارشو خردهی نداره اما اگر عنوان عنوان هدیه است مثل اجر مونی دلیل بر حرمتش این خلاصه بحثی که صادقانه حالا پس هدیه اگر به حکم این باشه که جلب محبت قاضی بشه یا حتی باش ولنچی نگاه کرده کنه فرصد بحثی که داره بر عنوان هدیه میره که رشتش نباشه هدیه عنوان و ارز نمی کنه چون ما ارث کردیم رشته عنوان نداره هر پولی که داده بشه که به نه وو هف میکنه رشته. اسمش هدیه باشه. اسمش بعد سه دو تا خریداری میشه. هر اصلی رو بخواد انتخاب بکنه اسمش رشته باشه. سه و هفت برای رشته. اسم تأثیر نداره. اونی که تاثیر داره لا هر کلو املا کم، دین کم، بل باسی و خود لوبهای ال حکام. یعنی اگر بخواد از راه پول حالا حکام شامل خوزاد هم بحث کبری ما بود یه بحثی رو هم مرموم شیخ در اینجا فرقی ای رو م... م... متعرض شدن با عنوان و ما در همین مقاصر مرموم هست ای؟ در این ای که این کاظر محاکر نوشتی در آن باید مراجع کن و من ما یاد دومنرش و یال ها المعاملت و على و محابات یعنی یک معاملی که یک مقدار کم بگذار برد من القازی مایوساوی اشرت دراهم به درهمه به قاضی این کارو میکنه یک خونه ده مدیونی میشه یک میلیون که قاضی به همه شخص در مرمون شیف در اینجا سفر سر بودن اولا بعدی توضیحات مفصلی و اثر کردم اون داخل فروشی شد ما اثر در مسائل فقهی خوب دارید دقت ما یک فرع اساسی داریم مثلا اجربادی جایز یا نه هدیه به بازی جایز است فرع اصلی این چون الان خیلی بحث داریم بخاطر مسائل فقهی به کامپیوتر دار. داریم یه بحث اصلی داره یه بحث تکرئی داره دقت بکنید تفریعات هم گاهی تفریع بر همونه اونم بسیته. مثلا ارت در باب روزه حرامه آیا برهیدن مثلا انگوشتر یک مثلا گاله چن مثلا آیا این ارت هستنه این ها فروع بسیطه هم دقیقه گاه یه پیچیده میشن یعنی تفریعاتی که ما درست میکنیم اسمشی گذاشید در برسه سابق تفریعات ترکیبی. خاصی از ترکیبی نکته قنیش اینه که یک خودرو در, در نیازمند که خوب در شعر بخدی نمی‌مونه چرا که مهمه غیر از اینکه خودش در اصولی که از قدرتهای مهم در شعر ما باشه انسان در این کوره ترکیبی است غیر از خیلی از اصولی که در شعر ما آمده اینا ترکیبی هستند چون مهمترین مهم تجربه‌ایه که ما داریم سوالاتی که از ائمه شده ادهه از این سوالات ها ترکیبی دارد خیلی دفت بکنی دو تا کبراست سه تا کبراست یک کبرا نیست لسا در مقابل نتیجه باید کبراها رو در نظر بگیر تا نتیجه گیری بکنه ببین در اینجا الان اینطوره خانه ده میلیونی رو به قاضی فروخته به یک ملیون این در حقیقت یک نوع خرق ترکیبی است یعنی چه هرکی دیست؟ یک ایشان به قاضی رشبه نداده نه ملیون کم کرده نهایتش میشه حدیه اون اصل کبراش چی میشه؟ اصل کبراش میشه کار حدیه به قاضی حرام یا نه پس یک حدیه به قاضی حرام یا نه دو آیا بخشیدن هم به حقم حدیه است یا ندونی؟ نحوه ترکیب رو مخاب چون اگه شما این تحلیل ها رو انجام بدین در یک مسئله بعد برای شما ملکه میشین در کل مسئله این در مسائل ترکیبی شما باید مثل یک کامپیوتر تمام اون رو در نظر بگیرید. پس یک آل آخریه به قاضی حرامه مثل بشه دو کم کردن مثل هویت من پوی بشه خانه بشه دادم معاملن کردم. بنابراین عایدم اینه که در معامله کابه اون مقداری که شما ابراز میکنید من گفتم خانه رو به شما فروختم یک میلیون دیگه قش میکنید یه دفعه دیگه خانه رو به شما فروختم 10 میلیون 9 میلیون رو به شما بخشیدم برای اینکه مثلا قضاوت کارن این میشه هرز این بحث نداره یه دفعه میگه نه این چرا فرق نقطهشو میخوام عرض کنم میگه از اون خونه را گفتم 1 میلیون قیمتش ده میلیون میگه خب این هدف نیست چون من ممکن است یک جنس یک خطای شما بهم یک کنن ممکن جنس خطای شما اشتباه حساب ممکن دیگه مشکل داره و لزوما آیان در بحث بی همیشه میگن بدل حقیقی بدل جهی این بدل های مجازی میگه اگر قیمت این کتاب 1000 این بدل حقیقی بشه شما فروختیم به ده کما این بدل جهیه اگر فروختیم به 1000 بدل جهی پس بنابراین یک هدیه حرام دو همین که جنس و ارزان فروخت نصدار هدیه. هست پس بنابراین چون چون خب تفریعه ممکنه چون نیست اگر گفت ده میلیون فروختن نه ساره بخشی در این حدیه هست اما از از برگم یه فروختن این هدیه نیست ابرازی چه شده یک میگونی پس اینجا تاییزو دو, دو تا پره رو شما در نظر دارید حالا نکه اساسی این به باطل یا نه ترس این هدیه حرام فرس کنیم و این هم هدیه آیا این فاسد باطل یا نه این برمیگرده باز به قوائده اینکه نهی در معاملات موجب فساد است یا نه، ببینید دقت یک فرع دیگه آمد من شیخ داره چی میفرماید؟ میگه ما سر صورت، من این تفریقات براتون آوردم. میگه فئن یک یَخْسَد معامله، الْمُعَامَلَةِ إِلَّا الْمُحَاوَاةُ الَّتِي اگر قصد نکرده، مگر محاواس رو این شو صورت دوم در کلمات مرموم شیخ او قصد المعامله لکن جعل المحباتل اجل الحکمله این کم کردن رو به خواهدین که به نفع او حکم کنه به انکان الحکمله خوب دفعه کنیم مرموم شیخ هم حواست جمعه نمیگی در ضمن نه گفت این خونه دوستم ده میلیون به شرطی که به نفع من حکم کنه نه قراردادشو از خارجه چون بنابراین که شرط باید در ذهن عقل ذکر بشه به امکان الحكم له من قبيل ماتوات اعلی منشود غير مصرح به هافل عقل کی این پوزیش از میکنه صحیح در این دو صورت ریشه است و این قصد و این قصد اصل معامله لها بافی ها پسش فروش خونه بوده لیکن نه میگون کم کرده به قلب الغازی فهوه کل هدیه، ملحق اتون به بشه این کار حرامه چون هدیه، وفی و فساد معاملت المحابافی ها آیا به هم فاسد یا من پس مرحوم شیخ دو سه صورت برای مسئله قرار داده این سه صورت کارش چیه کارش اینه چیه اون دیگه دیگه دیگه که اون قواید دیگه‌ای که میخواد تبیین بکنه روشن میشه. اولا من شرح سه صورت شیخ بودم این سه صورت بیان بکنم اولا من گفت که اگر لم یقصد الا این عبارت شیخ ارشدم مهمه یعنی باشه بر حسب ظاهر باطله بر حسب ظاهر یعنی ایشون میگه راختی که فروخونه رو به 1 میلیون فقط قصد کرده نو رو بده فقط قصد محبات هست چون قصد محبات کرده این معامله باصله این بعید به مراد شیخ باشه شیخ عجل و شانہ نمو خب معلومه اگر معامله قصد نشه هر معامله ای که قصد نشه باصله این چیزی صورت هر معامله که سوری باشه و شما قصد جدی ندارین باصله بی میگه اگر قصدشون نوه میلیون رو بکنه یعنی چیف ایلم یک سود به معامله الا المحابا ظاهر عبارت شهرین هست که ایشان اصلا قصد معامله نکرده بود. و این از شعن شیخ بریده اصلا خیلی شعن شیخ ما عجل میدونیم که مراز ایشان همینطور است که اون سفر قبلی در بحث قبلی توضیح دادیم مرهوم آقای به اصطلاح محققه ای روانی در شرح این عبارت این طور حق با ایشانه نوشته مراد اینه که قصد معامله کرده دکن قصد معامله از چون اگر قصد معامله نکرده باسته نکیده کاری به حدیه و رشه رده اوما اگر شما برین خروجگاه غالی خروجی بیدیم اینه خیلی هم در خیلی قصد نکیده محققه هدیه باشه محققه نباشه اصلا رفتی, رفتی به حرمت هم نداره اگر شما قصد معامله نکنید اصلا معامله باطله بخواهن هرام باشم اینه که مرهوم مرهومی روانی عبارت شیخ رو تأویل کرد و باید این تأویل هم بشه عبارت شیخ برسه نمیشه قبولش در پس مراد ایشان از این عبارت رو یعنی قصد معامله کرده خوب دقیق بکنید لكن دوری او بر این قد معاملات موجود باشه صورت ما چیزی نشون بده شی در معاملات اثر خواهد داشت یهو در حد حدیوره نشون داده چون این معاملات هر معامله‌ای که حساب قرض‌الحسنه باشه کاری درش نمند صبر کنید رستر یعنی این معامله فقاطی رقی اداره به معاملات چه معامله نیست اصلا معامله نیست وقتی شما به صورت چنین خوب دقیق کردیم چی شد مثلا؟ پس این وقتی بهتی که خانه رو فروختن واقعا قصد داشت واقعا خونه رو داری میخوشیه لکه اون دایه اساسیش این بوده که نهمگیون رو به قاضی برسونه خوب دقیق نمشن شد واقعا قاصد بود یعنی واقعا قصد یک آمه معامله داشت واقعا وقتی با فروختن واقعا خانه رو فروخت لیکن دایی اصلی این روح میلون رو در قاضی برسوده مثل این که شما نگرده فرزن در شما مریضه مجبور این خانه که قیمتش در میلونه به دو میلونه بسرش که بچه علاج بکن خب میشی پیش این رو حالا این معامله باسه استرالی گذاشتن که سیش برسن معامله استرالیده ای استرال چون دهید دیگه مستر با م در بین مکره اصلا تسری نبوده یک کسی حسیبی باده که شما گرفته و خونه رو برسوشید رو این بین مکره بچه ملیده و خونه رو میخوشد به دیر یک خمجمه لیمت که بچه رو الاز بکنم این اصلا بین مستر بین مستر و سهید میدونم بین مکره رو با سه میدونم روشه به مستر رو صحیح میگونم از مثل مشروع در استدلالات های جور گرد من نیم بخوابون استدلال این که من خواستم به استدلال های نیست راه دیگه اش نه که در بیعه مستر واقعاً بهیه دفت بکنه چون میدونه علاج بچی بدون این پول نمیشه واقعاً دو ملیون رو میخواهن اون واقعاً این دو رو می میخواد. راهی هم الان نداره جز که خونه رو بسوشه حالا اون داعی اصلی اصلی شفاه بچه بود اگر به خاطر بچه نبود نمیگو اما در مثل بیه اصلا داعی بر جز نداره اکراه خارجی او رو بادار میکنه در اینجا هم مراد مرحوم شیخ همینه یعنی این معامله در ما از قبیل بیه مستره روشت شد نه از قبیل به اموکره مراد شیخ اینه در اینجا داعی اصلی محاباته داعی تبدی به قصد به هم کرده خانه رو واقعا به یک میلیون به قاطع داره میفروشه نسی اینکه به دو میلیون میبوشه برای اینکه بکش اینجا شده پس مراد شیخ شد تو. مراد شیخ اینه که توسطین این فروش بتونه مهابات رو انجام بده حدیه ای به قاضی برسونه این صورت اول قصه خب این در صورت اول قضیه اینجا ما باید مثلا دنبال این محلق واقع بشیم دنبال این. که اگر کسی قصدش از یک معامله قصد محرم بود رشوه بود آیا با قصد معامله محرم با قصد رشوه اینگه اصلا رشوه هست آیا این حرمت رشوه سرایان پیدا میکنه که بگه معامله هم حرام؟ این یک دو آیا سرایان پیدا میکنه که بگه معامله هم خاصه؟ چون ما از در خلال کلمات و اصولی ها و طقه ها در اینجا اینا برای معامله دو فرضی میکنن یکی حرمت که جمعه تطریفی داره یکی حساب که جنبه وضعی داره نه این چند اشتیاز مثلا این مطلب همچی جراعلا هلسنته نه توجه داره. لذا اگر جفت بکنیم مثل مرموستان ها خب تصویح دارن توی مبارس و حصول بعد از مبارس عوامر یا بعد از حتی نوالی قالمان بعد از عوامر رو قرار دادن به عنوان بحث ملازمات یکی شم این که آیا نهی در معاملات یا عبادات مختصی فساد هست یا نه چرا اون بحث در اصول مطرح کرده؟ چون در اصول آمدن گفتن اگر حتی از معامله نه شد مثلا شما با شرکت های امریکایی مح... مثلا معامله نکنید این نهیه در حرمت میکنه ملازمه یعنی چی؟ آیا ملازمه در نهی در معاملات با فساد هست یا نه و نظام ما در اونجا توضیح دهم ده بسید مقاس هم توضیح, هم توضیح دیم این تفکر است برای این که ما دو چیز داریم یکی حرمت یکی قساد حرمت با قساد تلازم داره مثل دود با آتش چطور دالومت رو گرفتن؟ آیا حرمت با قساد توی معاملات تلازم داره یا نه؟ خود ما از کردیم که دو چیز نیستن یک دو مدلولن و در طول هم نیست، در عرض واحده یعنی اگر گفت ما با شرکت های نکن هم تحریم میکنه هم میگه این معامل فاسده شاید تو خلال بحث ها توضیح باز باید عرض بکنه. پس یک بحث در اینجا راجع به بشه بود این هدیه است. آیا در اینجا که محاباته ملحق به هدیه هست یا نه بحث دیگه الان تربیری که این محلق ثابت بشه که این است. معامله حرام میشه یا نمیشه یک اگر حرام شد تاسد میشه یا نمیشه این صورت اول در صورت دوم مردم شیخ میفرماید که اگر قرارداد با بسته باشن در صورت دوم در حقیقت دو چیز رو قصد کرده هم فروش رو قرص کرده هم محابات هر دو در انزوه واحد این فرق ازولی با دور پس بنابراین در حاشی مقاسی بسید مرموم بفرمایید در صورت اول مهابات با قصد معامله توری هست یعنی اون داعی اساسی محاباته لیکن قصد بی هم کرده شما میدوند به محابات میدوند قصد بی بکنه پس اینها توری هست این صورت دوم که مرموم شیخ میگه اینا عرضی هست یعنی در آن واحد هم قصد بیل کرده هم محاباتی میشه عرضی از هر به بیل صورت اول و صورت دوم این شد که در صورت اول طولی هم محابات با قصد معامل در صورت دوم در ارز واحدن. هم وقت حالا که در ارز واحد دقت هم اون نکته اصلی شید نقطه اصلش بحث قاعده شروطه یعنی در اینجا شما باید قاعده شروط هم ترکیمی تر تر تر در قاعده شروع مبناشون برای این است که شرط وقتی واجب میشه که در مطن عقضه شد حالا اگه قبل از ارزش شد انا خیلی از این کافی نکافی جاریم اول شرط هایی در مطنی عقضه شروط رو نمیبرد قرارداد بستن اما در متن عقض روخته نشده بحثیستی انشاءالله در مباحث خودش خواهد آمد مشهور بین فقها این است که با در متن عرضه بشه. لزوما مرحوم شیخ اینجا اینطور می‌فرماید. می‌فرماید نکته اینجا این است که این اصلا در متن عرضه نشده، ملحق به شرطه. شرط نیست. چون اگر شرط باشه خود قرارداد. پس این مسئله فرع دومیشون فرعی کبرای دیگری هم هست، آیا شرط هست یا نه؟ هر سومیشون ای چیه؟ اینجا محابات و از قبیل شرط اینجا که ملحقه به شرط در صورت سوم محابات و از قبیل شرط میگه اولا محابات با معامله در عرض همه هم. یکی لیکن از قبیل داعیه نه از قبیل شرط مثل این میمونه که شما دارو میخوریم به این داری که بچه تو خوب بشه. بعد بچه خوب نجور. اینجا این نوع تخلق داری است. به این داری که قلبون رو جلب بکنه انجام داده. قرار دادم نبسته. این سه صورتی است که محوم شیخ فرض و در این صورت هم متعرضه حرمت معامله شده هم متعرضه فساد معامله و روشن شد درتون که این فرج جزء فروه ترکیبی در چه صورتش من مقتنی هستم بر تطبیق اذه از قواعد اذه از خبرات ان شاء الله نتیجه ما شاء الله علی محمد